سور متففی موضوع قیامت هست اما اینجا با تعبیرات جدید و اینجا خدای عزواجل دو جا را مشخص می کند اونجایی که هم ارواح این دو گروه می ارواح ابرار و اشرار و هم پرونده هایشون اونجا قرار میگیرد، اینجا کجا هستند؟ یکی علیین هست، یکی سجین هست و در رابطه با این دوتا الله تعالی توضیح میده. اما قبل ازون الله عز وجل یک مریضی که مال انسان هاست و عموماً هاس انسان ها گرفتارش هستند اون رزق میفرماید و کسانی که گرفتار این مرض هستند برای اونها وعید بیان فرماید می فرما ویل للمتوفین حلاکت برای متففین متففین کیا هستند اهل تدفیف چه کسانی هستند صبح در داستان قوم شعیب مقداری از این را خواندیم، لذا در این درس مقداری بیشتر باز میکنم تتفیف را خدمت شما تا متوجه شده. را اگر ما بخوایم یه ترجمه ساده بکنیم. گرچه اینجا خود قرآن تفسیر کرده گفته اونهایی که وقتی از مردم کیل میگیرند، کیلشون را کامل میگیرند، یعنی از مردم جنسی میگیرند، جنسشون را کامل میگیرند اما وقتی که به مردم جنس بدند برای مردم کیل کنند برای مردم وزن کنند برای مردم انداز گیری کنند اینجا خیانت میکنند و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون هرگاه کیل کنم برای مردم یا وزن کنم برای مردم یخسرون اینجا دیگه خساره میکنی یعنی کم به مردم میدن دقت داشته باشید که اصل تطفیف یعنی کمکاری یعنی خیانت کردن اینا همه مفهوم و مراد تطفیف هستند. خیانت کردن هر کاری که به عهده شما هست با طرف مقابل هر قراردادی بستی در این کوتاهی بکنی در این کمکاری بکنی در این خیانت بکنی این تطفیف است و یکی از بزرگترین گناهان است، و انسان فکر میکنه باعث ازدیاد مالش میشه باعث ازدیاد مالش نمیشه الان برای شما عرض میکنم به چه صورت؟ خب یک دو صورت همینی که قرآن گفته یه جنسی میفروشی چه کیلی چه وزنی یا عددی یا عددی حساب میکنه از چهل میپره به هفتاد مثلا طرف فکر میکنه که هفتاد تا شدند بعضی همین طور هستن یک دو سه چار پنج میشه چلو پنج چلو, چلو، هفتاد و طور بعضی ها این طور خیانت میکنن بعضی ها بالاخره وزن میکنن طوری تنظیم میکنن ترازو را که قرارداد برای یک کیلو بسته یک کیلو هزار گرمه اما نه گرم بهش میده ترازو را طوری تنظیم کرده مثل دیجیتالی های امروز یا قدیم که سنگ قلابی بود. لذا برای مردم اینطور میدن هر چیزی که علماء گفتن هر چیزی که تو اون کمکاری باشد تو اون خیانت باشد این جز متففین هست جز تدفیف هست مثلا یه پروژه هست پروژه که آقا مهندس کار میکنه اونجا قرارداد میمود این پروژه را با این کیفیت درست میکنم این پروژه را به این صورت درست میکنم بعدن خیانت میکنه در اون ملاتیک اونجا به کار میبره در اون موادی که به کار میبره اونجا خیانت میکنه. مثلا خیلی یا هستن که با دولت قرارداد می بندد. دولت جاده رو را قبول میکنه خب جاده برای خود شرایطتی داره یک استانداردی داره. مثلا استاندارش اینه که شنش لایه باشه مثلا نه لاه ده لاه یا پنج لایه باشه این سلایش می کنه بیشتر از اون بالاخره نمی. این تطفیف این کمکاریه. این بالاخره نصف پول را بالا کشیده فکر میکنی که بالاخره مال اضافه شده این مال بلائی میشه برکت از زندگیت میره خیر از زندگیت میره یا مثلا یک کارگری قرارداد میبنده هشت ساعت کار میکنه این بجای اینکه هشت ساعت کار میکنه یک ساعتش را دو ساعتش را به بحانه های مختلف آب خوردن و وضو گرفتن و نمیدرون فلان کار کردن میبره و ضایع میکنه کاریش بجای هشت ساعت، شش ساعت میشه، پنج ساعت میشه، این تطفیفه، یک کارمندی هست، یک مدرس حوزه هست. مثلا اونجا قرارداد شاید هشت ساعت کار بکنه، شش ساعت کار بکنه، پنج ساعت، هر چی که باشه، لذا، هی hey, پاس میگیره هی hey, فرار میکنه هی hey, وقتش را به جای دیگه ضایع میکنه سر ما میخواد حقوق را کامل بگیره اونجا هم گزارش برایش رد میشه و چه بسا اضافه کار هم برایش رد میشه اینا تمام تدف تفی... تدفف دلش خوشه که پول اضافی من داره میام میارم در حالی که این پول برای بچاش بلای درست میشه لذا همه این صورت های تطفیف که انسان کمکاری میکنه و خیانت میکنه شامل این میشه حتی بعضی از فقها و علماء گفتن تطفیف در نماز هم داریم تطفیف در نماز هم داریم مثلا رکوع را باید کامل بکنی تعدیل ارکان کامل بشه سجده کامل بشه بعضی ها بدو بدو چنان میخوانند که بالاخره نم مشخص میشه قومش کدومه جلسش کدومه رکوعش کدومه قیامش کدومه لذا اینها همه صورت تطفیف هستند و یک صورتی که امروز امروزه هست گرچه شاید اسم تطفیف را نمیشه بر او برد ولی اون نوع خیانت هست نوع ضرر به مردم هست همین مسئله احتکار ببینید تاجر رما در درسه گذشته فضائلی برای تاجر و تجارت بیان کردیم و گفتیم معلوم میشه که تجارت یه شغلی هست که خدای عزوجل دوست دارد این شغل را و خدای تعالیٰ اون نفعی که تاجر از راه تجارت میبرد اون را چند جا خدای تعالیٰ فضل خودش گفته فضل رب العالمین به دلیل اینکه شما که تجارت میکنید این نفعتون دو طرفه هست یک نفعی به شما میرسد قوت لایمیوتی به زن و بچه تو میرسه و یک نفی به مشتری میرسد نیازش برآورده میشه اما وقتی که این آغایی که فروشنده هست کاری میکند که اون مشتری ضرر بکند خیانتی میکند که اون مشتری ضرر بکند یکی از صورتهاش که امروز هست همین احتکار هست اول سال هست ببینید تو این شهر خیلی از مواد خوراکی گیر نمیاد مردم الان برای ماه رمضانشون میخوان آمادگی بکنن میگن روغن اصلا نیست تو فروشگاه ها و گاه اخبار میشنویم که بعضی از این تاجرها بعضی از این کسانی که مواد خوراکی میفروشند تو انبارها اینا رو ذخیره کردن منتظر هستن که بعد از سال اون قیمت بالا و اون قیمت نجومی دیگری اعلام بشه تا چند برابر سود ببرند اینهایی ای که اینگونه خون مردم را میمکند اینها میخواهند که بخورد زن و بچهشون چی بدند آیا فکر نمی کنند که اینی که چنین با مردم در واقع خیانت میکنند احتکاری که از بزرگترین گناهان است که در حدیث من آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرموده به خاطر اینکه جنس بالاتر بره لذا تو بازار نیست قیمت بالاتر بره بعضی ها این کار را میکنند و چند برابر میخوان بفروشند. قبلا هم از کردم فکر میکنن که مال ما چند برابر اضافه میشه اما از یک طرف این مال چند برابر کم میشه صاحبه برایشون میاد مشکلاتی برایشون میاد. و آفاتی برای که مال را روید انجا مصرف بکنند لذا همه اینها صورتهای ناجائزند صورتهای حرام هستند مسلمان باید صادق باشه مسلمان باید امین باشه در اون حدیثی که تاجر تعریفش و مدحش آمده اونجا گفته اتاجر و صدوق الامین این دو چیز گفته شده تاجر خوب اون که هم در, در اون صداقت هست و هم در او امانت داری هست خیانت نیست. احتکار نوعی خیانت هست و از کنم کم فروشی خیانت هست و سودهای نجومی هم خیانت هستند. بسیاری از تاجرها هستند خود از ایزانی که از امارات از دوبی جنس میارن میگن که بسیاری از هم سنفای ما هستند که از اونجا جنسی میگیرند این جنس را اینجا چون اینجا وجود نداره اون جنس ده برابر میفروشند یعنی اگر صد هزار تومن متری پارچه رو میگیره یک میلیون تومن میفروشه این ظلم هست واقعا این مردم که از هر طرف تحت فشار هستند و از هر طرف ضربه میخورند با چه مصیبتی این پول را به دست میارند اینطور این پول را به شما بدن راحت شما بالاخره چند برابر چند صد برابر شما نف ببرید سود ببرید خدا راضی نمیشه لذا همه باید در این موضوع عدالت را در نظر بگیرند امانت را در نظر بگیرند هم نفع خودشون را در نظر بگیرند هم خیر مردم را و نفع مردم را هم در نظر بگیرند اینجاست که قرآن کریم با این کلمات تند و با این کلمات سخت این گروه را بیان می فرمد ویل, ویل یعنی هلاکت، نابودی، تباهی تعبیر دیگرش میشه لعنت خدا حلاکت برای کسی است که خدا از رحمتش دور بکند او را بر او لعنت و نفرین بفرستد اونهایی که چنان کمکاری میکنند که وقتی که بر مردم کیل میکنند کامل میگیرند خودشون میدونند یک گرمی کم نمیگیرند یک متری از پارچه کم نمیگیرند اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون زمانی که برای مردم کیل میکنند و برای مردم وزن میکنند و به مردم تحویل میدهند اینها خساره میکنند کم میدهند خیانت میکنند الله عز وجل میفرما این مردم لحظه فکر نمیکنند که یک روزی در محضر الله باید جوابگو باشند معلوم میشه از این چیزها خدا میپرسه از این خیانتهایی که با بندگان خدا بعضی میکنند خدا می پرسه الله میفرماید ألا يظن أولئک أنهم مبعوثون آیا انها نمی پندارند فکر نمیکنند که أنهم مبعوثون انها مبعوث میشند از قبرها یک روزی بلند میشند کجا میاند؟ لیوم عظیم برای روز بس بزرگ که اون روز روز حساب و کتاب است روز پرسش و پاسخ است یوم یکوم الناس لرب العالمین روزی که همه مردم برمیخیزند می ایستند در محضر رب العالمین می ایستند اینها فکر نمی کنند که اون روز در محضر رب العالمین حاضر میشن لذا اون روزی که در محضر رب العالمین حاضر بشیم انسان ها دو گروه هستند کلا ان کتاب الفجار لفیس جین دو گروه هستند یکی ابرار یکی فجار خداوند می که حق کتاب فجار یعنی پروندی فجار و نامه اعمال فجار در سجین سه سجین چیه سجین دو تا تفسیر کرده هر دو تا تفسیر با هم دیگر موافقت داره همخانی داره زد و نقیزی هم دیگه نیستن یکی سجین نام پرونده هست اون پروندهی که اعمال شیاطین اعمال فاسقین اعمال فاجرین اعمال کفار و مشرکین تو نوشته میشه تفسیر ابو سعود همینه نوشته سجین علم لکتاب جامع دوو نفیه اعمال من السقلین الشیاطین و اعمال الكفرت والفسق اعمال این گروه توش ثبت شده بعضی میگم سجین نام اونجایی هست که این پرونده اونجا نگهداری میشه و ارواح اونجا نگهداری میشه معمولاً انسان در دنیا هر بازداشتگاهی ببرند هر دادگاهی ببرند بازداشتگاهی همون دادگاه نگهداری میکنند. اگر بالفرض دادگاه انقلاب باشه برای خودش بازداشتگاه های خاصی داره. اگر دادگاه نظام باشه اون بازداشتگاهش خاصه. پس هر جا پروندهش را ببرند بازداشتگاهی همون جا هست. سه جین. بر اساس قول عبدالله بن عمر رضی الله تعالا نه زیر زمین، زیر هفت طبق زمین یه جایی هست که اونجا مخصوص تحخانهایی هست، سلولهایی هست، جاهای تاریکی هس انجا هست که اونجا مال ارواح کفار است. قال عبدالله بن عمر و قتاده و مجاهد و سجین هی الارض و سابعت زمین هفتم که اونجا پایین پایین باشد فی ارواح الکفار ارواح کفار اونجا هست لذا معلوم میشه که پرونده هم همونجا هست روح که پرواز میکنه میره اونجا من این را بیشتر اگر توضیح بدم در قالب یک حدیث توضیح میدم شما بهتر میفهمید چون بحث الیین هم میاد ایلیین برعکس سجین بالای آسمانها زیر عرش یه جایی هست که اونجا ارواح نیکان میره ارواح ابرار میره در حدیث این طور آمده که وقتی که انسان انسان صالحی باشد انسان خوبی باشد فرشتگان با اکرام و تعظیم میاند روحش را قبض میکنند و روحش را با اکرام و احترام و محبت می برند, می برند آسمان که می در می زند فرشتگان که اونجا نگهبان و ورودی هستن می پرسند کیه میگن که فلان ابن فلان را آوردیم خب هر انسان یک دری دارد که از اون در باید وارد بشه اون درش معلوم مشخص اون فرشته هم می دوند اون فرشته هم می دوند که انسان انسان هست از قبل آمادگی شده لذا میگه مرحبا به فلان ابن فلان خوش آمدید و کلمات ترهیب و کلمات خوش آمدگویی را بهش میگویند و اون را با یک عزت و احترام خاصی میبرن آسمان دوم در میزن همینطور سوم چهارم تا به اون جایی که در عالم برزخ محل این روح هست اونجا برده میشه اونجا تا زمانی که قیامت برپا میشه این انسان در ناز و نعمت هست در شادابی و خوشحالی هست در نعمت های پروردگار قرار داره این در عالم برزخ پس معلوم شد که الیین یه جای مخصوصی در عالم برزخ هست اما اگر خدای نکرده این انسان انسان بدی باشد با همون خشونتی که شما قبلا در آیات خاندید روحش را میگیرند و روحش را میبرند میبرند به آسمان ها اونجا که در میزنن میگه کیه؟ میگن فلان ابن فلان میگن نه اینجا برایش مرحبا ای هست نه خوشامدگویی هست نه جایش اینجا است برگردانید این فرشتگان میگن که کجا ببریم این را جایش کجا هست میگن زیر زمین ببرید اونجا جایش است بعد انسان را میارن انسان فاجر انسان کافر را میارن زیر از هفت طبقه زمین اونجا तहخانه هست های سلول هایی هست اونجا انسان را زندانی می و در شکنجه جو عذاب قرار میدهند. لذا این اون حدیثی است که درباره ارواح نیکان و ارواح بدان آمده از این آیات معلوم میشه باتوجه به این حدیث که سجین اون جاییه است که ارواح آدم های فاسد و کافر میره و ائلیین اون جاییه است که ارواح خوبان میره. اللہ می فرماید این کتاب الفجار لفی سجین کتاب و پرونده فجار در سجین هست وما ادراک ما سجین خبرداری سجین چیه کتاب مرقوم کتابی هست که نوشته شده بر علیه این فجار و فساق تمام عمل, عمل کرده سویشون نوشته ویلون یوم اذل للمکذبین حلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان انهایی که جزاره تکذیب میکنند کیا هستند مکذبین الذين يكذبون بيوم الدين انهایی که تکذیب میکنند روز جزاء را چه کسانی هستند اینها و به الا كل معتد عثیم. تکزیب تکذیب نمیکند روز جزاء مگر هر انسان متجاوز و گناهکار معتد في عقیده و اسیم فی العمل یعنی هم از نظر اعتقادی مشکل داره هم از نظر عملی گناهکاره اینا کسانی هستن که اذا تطلا عليه آیاتنا هرگاه بر او آیات ما تلاوت میشه قرآن خوانده میشه قال اساطیر الاولین این افسانه های اولین هست اینا داستانی. اینا حقیقت نداره افسانه هست همه الله می فرماید که این بیچاره این طور میگه این دلیل چیه؟ بدلیل اینکه دلش زنگار گرفته بر دلش مهر جباریت خورده دلش لایق هدایت نیست چرا نیست ماکان و یک سبون به سبب عمل خودش ببین خداوند هیچ دلی را زنگ نمی زند بر او زنگار قرار نمیدهد، دهد مگر اینکه خود انسان عمل سوی انجام بده در حدیث می آید انسان وقتی که یک گناهی می کند بر اثر این گناه یک لکه سو و سیاهی بر قلبش می اگر زود خدا را یاد کند استغفار بخواند توبه بکند رجوع کند به طرف خدای عزوجل این لکه پاک میشه اما اگر توبه نکند استغفار نکند و بیپروائی بکند بعض گناه دوم گناه گناه میاره فساد فساد میاره گناه دوم را مرتکب میشه لکه دیگری گناه سوم را لکه دیگری همینطور کم کم کم کم تمام دلش را زنگار میگیرد یک پرده سیاه میگیرد اون وقت این انسان دلش قفل میشه نه هدایت میاد ن رقت میاد ن رجوع ال الله میاد این همون انسانه که مهر جباریت خورده محروم شده لذا کلا بل رانا الله فرماید دلیل تکذیب چیزی دیگه نیست هرگز چیزی دیگه نیست بلکه بل رانا بلکه زنگار گرفته بر دلهاشان. یا زنگ زده بر دلهاشان چی چیزی باعث زنگ شده؟ ماکان و سبون آنچی که کسب کردن یعنی اعمال کفریه و شرکیه و فسقیه باعث شده که این زنگ بیاد روی دلشان کلا انہم عربیم یوم اذن لمحجوبون الله می فرمایت حقا حقا. حق اینست که انهم همانا این انسانها عن ربهم از ربشان در اون روز محروم هستند لمحجوبون محرومون یعنی از نعمت رب محرومند خداوند از و بر لطف نمی فرماید ثم انهم لصال الجحيم سپس این انسان ها داخل می شوند در جهنم ثم یقال سپس به اونها گفته می شود ای انسان ها هاذ الذی کنتم به تکذبون این آن چیزی هست که شما این را تکذیب کردید امروز شما با این مواجه شدید یعنی قیامت را تکذیب کردید لذا انسان اونجا هرچی پیش پشیمان بشه دیگه فایده ای نداره به عذاب خدا گرفتار میشه بعد از این بشارت کلا اونها اب فجار اما الان ابرار انسان های نیک انسان های صالح انسان هایی که در زندگی خودشون همیش نیکی میکنند ان شاء ولی بر نیکی حریص باشید ابرار در صورتی تعریفتون میشه و صفت شما میشه که بر هر نیکی حریص باشید بر نماز حریس باشی از هم دیگه پیشی بگیرید مسابقه بدید بر تلاوت بر ذکر بر درود خواندن بر صدقه دادن بر مواسات و همدردی بر خوش اخلاقی بر امر به معروف نهی من کرد. در هر کاری خیر و کار برو نیکی پیش قدم باشید لذا اون وقت میشید ابرار یک کسی که عادی هست نه خیری از او میرسد نه شر از او میرسد این نمیتونه دیگه جز ابرار باشه ابرار اون کسی هست که همش خیر ازش میرسد همش نیکی میکند لذا الله میفرماید کلا این کتاب الابرار لفی علیین حق همانا نام اعمال ابرار و پرونده ابرار در علیین هست علیین چیه؟ وما ادراک ما علیون خبرداری که علیون چیه کتاب مرقوم ان کتاب مرقومی هست نوشته شده یشهده المقربون انجا گواهی می دهن برای اون و و حاضر می شون مقربان خاصان پروردگار باز جای این ابرار کجا هست ان الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ همانا انسانهای نیک انسانهای که داره خسلت خوب هستند اونها در نعمتهای پروردگار در بهشت هستند علالعرائی که ینظرون روی تختهایی نشستند و تماشا میکنند ینظرون چرا تماشا میکنند؟ عجائب بهشت را مناظر زیبا و عجیب بهشت را نگاه میکنند تعرف فی وجوههم نظرت النعیم می بینی در چهرههای اونها تر و تازگی نعمت را در ناز و نعمت در خوشی و ارز کنم که سعادت نشستند و تماشا میکنند یسقون من رحیق مختوم یعنی پذیرایی میشوند و نوشنده میشوند از شراب رحیق شراب خالص اما شرابی که مختوم مختوم یک معنیش هست زده شده باشد یک معنی دیگرش هست که او قاطی شده باشد مهرش چی و مخلوتش چیه خطامه مسک. خطامه اون و از کنم که قاطی اون مسک هست مسک خوشبویی هست که از ناف چی میگیرند آهو میگیرند اما اینجا خدا می دونه که اون خشبوی و اون عطر چه عطری هست و فی که فلی تنافس المتنافسون اینجا خدا ترغیب میده و خداوند از هم با این زیبایی که بیان می اینکه ما از هم دیگه برای رسیدن به بهشت پیشی بگیریم سبقت بگیریم. الله میفرماد در این چیز باید رقابت کنند رقابت کنند دیگان ما در چی چیزای رقابت می کنیم؟ اونها درست نیست ما در مدل رقابت میکنیم ما در ماشین مدل بالا رقابت میکنیم ما در لباس روز رقابت میکنیم در مدل های روز رقابت میکنیم در برج و ساختمان سازی رقابت میکنیم الله میفرمايت رقابت اینجا باشد و فی ذالک در بهشت نعمت های بهشت و رسیدن به اون نعمت ها ولیت نافس المتنافسون باید رقابت کنن رقابت کنن دیگان ندر نعمت های دنیا نعمت دنیا یک ضرورتی است هرچی خدا داد استفاده بکن ولی فخر و مباحات نکن من تسنیم و من تصنیم و آمیخته اون شراب از تسنیم هست تصنیم نام چشمی هست در بهشت عینن یشرب به المقربون تصنیم چشمهی هست چشمهی که می نوشند از آن مقربان ببینید انسان های خاص معلوم میشه این تصنیم مال اون هاست چشمهی که می انسان وقتی که از اون آب نوشجان جان می کند چنان شیرین هست و چنان خوشبو هست که وقتی که انسان میخورد یک عرقی از بدن انسان خارج میشه. که این عرق در واقع عطری هست که از مسک هم خوشبوتر است از مسک که خوشبوترین خوشبویی هست هم اون عرق خوشبوتر است لذا الله می فرماید عینا يشرب بها المقربون بها یعنی منها ان الذين اجرموا حال یه اشتباهی که مجرمین و فاسدین در دنیا داشتند گوشزد می فرماید و یاد هم امنا کسانی که اجرم و مجرم بودند جرائم پیشه بودند در دنیا کانو من اللذین امنو یضحکون اینها بودند بر کسانی که ایمان می آوردند در دنیا میخندیدند هی hey به آنها مسخره میکردند میگفتم ماشاءالله خوب آمادهگی میکنید به بهشت ما را فراموش نکنیم و چیزهای متعلق های دیگری که به اهل ایمان میگفتند و اذا مرو به هم مرور می از کنار اونها یتغامزون غمز می گویند با گوشه چشم اشاره کردن یعنی گویا چشمک می زدن با گوشه چشم اشاره می کردن اشاره می اینها که اینها اینقدر ساده هستند تحقیرشون می کردن. و اذا انقلبو الى اهلهم انقلبو فکیهین همین مجرمین وقتی می رفتن بر میگشتن خانه خودشون پیش اهل و عیال خودشون بر میگشتن خوشحال خوشحال بودن که تو بازار امروز ده تا مسخره کردم امروز فلان کردم چنان کردم لذا خوشحال بود و اذا راوهم وقتی که هر می دیدن قالوا ان هؤلاء ضالون می گفتن اینا گمراه هستن بیکارند نمیدونن چیکار بکنن شب و روز نماز شب و روز مسجد خدا یعنی خودش باور نداشت به این چیزا الله می و ما ارسل علیهم حافظین اینا که اینقدر بر بندگان نیک ما ایراد می گیرند به عنوان حافظ اونها که فرستاده نشدند که زامن اونها باشند حافظ اونها باشند نگهبانی اونها باشند خلاصه در دنیا تمسخر می‌کردند اهل دین را کسانی که پایبند شریعت بودند امروز بیشتر در دنیا همینه اینایی که بی‌دین هستند گایید دینداران را نگاه میکنن تعجب میکنن ببین اینا مسخره میکنن که اینا عقل نداره میگن روز چند بار برو نماز بخوان و فلان لباس را بپوش فلان پوشیش را داشته باش حجاب را مسخره میکنن نماز را مسخره میکنن تقید و پایبندی به دین را مسخره میکنند. الله میفرما اونجا برعکس میشه فلیومالذین امنو من الكفار یبحکون امروز مؤمنین به کفار میخندند کسانی که ایمان آوردن به کفار میخندند علال ارائی که روی تختها نشستند و جهنم را و ته جهنم را کفار را میبین نگاه میکنند و میخندند میگوین یادتون هست ما را مسخره میکردید الان شما قابل مسخره هستی یا ما دیوان شما بودید یا ما؟ حل صوف بالکفارو ما کانو یفعلون الله میفرماید فرماید حمانا این کفار حل بمان قد هست حمانا این کفار جزا داده یعنی می شون صوف بالکفار یعنی جووز الکفار کفار جزا داده می شون ما کانو یفعلون آنچه که انجام میدهند یعنی جزای چیشون را می بینند عمل کرد خودشان را می بینند خب این سوره زیبای متففین بود که این سوره موضوعات و مطالبي از آخرت خواندیم احوال ابرار و احوال اشرار